بسم الله حم بااحی ممد الله و صلاط السلام على آاصود اللهی دو تا باب الان داشتیم که باب فیلت اسلام با دوم وجود به در اسلام. باب اولیی فیلت اسلام و باب دومی وجود دوکور در اسلام. باب سوممی تفسییر اسلام الان اولیش اسلام فیلت داره. دوممیشواجه این اسلام را با بهش عمل بکنید سوون میخواب این اسلامی که ما باید بهش عمل بکنیم چیه؟ این اسلامی که فیلت داره و این اسلامی که واجه با بش این اسلام چیه؟ فرموده خدا را میاره در زیر این باب اولین آیه که اینجا میاره فرموده خدا و قول الله تعالی فا این حجوک فقل, فقل اسلم تو وجهی لله و من التبعه من و پیروان من بگوی محمد از باب دلیل و برهان و مدرک به مشرکی بگو ما دین ما چیه؟ اسلام اسلام صورت اینجا گفت اسلم تو وجهی وجه یعنی صورت چرا گفت صورت؟ چرا گفت اسلم تو وجهی صورت خودم هم رو تسلیم کردم به خداون یعنی چی؟ اسلام تو وجهی؟ لیله این کنایه هست کنایه از التزام بدنی و قلبی اسلام ظاهر و باطن کنایه هست اینه یعنی من به صورتو اقبال کردم پروردگارا با صورتم نه به چپ نگاه میکنم نه به راست همونطور تو که در قرار داشتیم اگر چپ رستی راست رفتید گمراه میشید ای محمد بگو من با صورتم فقط یعنی بقول مرو فقط به سوی تو پروردگار را تسلیم شدم تسلیم تو شدم فقط من و من. این اسلامه اسلام یعنی تسلیم شدن به خدا این اسلام تسلیم شدن فرمان خدا اگر ما تسلیم رسول خدا بشیم از باب تسلیم بگه به خداوند و من اطاعت رسول فقط اطاعت الله اطاعت از خدا اگر اطاعت از رسول خدا میکنیم. اگر اطاعت از والدین میکنید اسباب اطاعت چیه از خدا چون خداوند از ما از ما خواسته که اطاعت از والدین بکنید و صلی الله علیه و آله وجناحذل من الرحمه شوف خدا از ما خواست نه اینکه به ذات خودشون مستقلا ما باید ازشون اطاعت بکنیم بس اینجا مراد از این آیه و ان حجو کفقل اسلمتو ای استسلمت یعنی تسلیم امر خدا شدم با قلبم و با اعمالم و در این ظاهر و باطنم تسلیم خدا شده وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن الرسول الله, الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتوتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديثكم مشهور حديث جبريل وايش ميجان حديث جبريل جبريل عليه السلام كحديث عمر بن الخطاب نقدر نقوله الله بن عمر عم عم جبريل مياد درجه من كصحابه نشاسه بودند مياد در اون جنب زانو به زانی رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌نشینه. زانو به زانی رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌نشینه. دستاش رو پای رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌ذاره و سؤال می‌پرسه. اسلام چیه؟ ایمان چیه؟ احسان چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم در تفسیر اسلام چی میگه؟ انتشهد ان لا الله وان محمد رسول الله. انتشهد ان لا اله الله وان تشهد ان محمدا رسول الله و تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج یه مسئله ای که ما داریم مامانم این که ما قبلا اشاره کردیم به اینکه اسلام و ایمان دو تا لفظ این که اگر با هم بیان معناش فرق می‌کنه اگر مجزا بیان گفت خداوگن میگه ای کسانی که ایمان یا یا الذين امنوا مسلمان هم شاملش میشه از نظر امام بخاری اسلام و ایمان یه چیزی ان بعض از علما اینطوری ولی جمهور ائمه چون چهابی هم بیاره و ابن بلاغه حنفی میاره ده ساحت میگه اسلام و ایمان دو کلمه این اگر با هم بیان معناش فرق مبونه. اسلام میشه اعمال ظاهر و ایمان میشه که اعمال باطنی اسلام میشه اعمال ظاهر همونطور که در این حدیثه شهادتین گفتن با زبان نماز خوندن روزه گرفتن و ایمان اون مسائل قلبی از ایمان به خداوند و ملائکه یک مسئله ای که اینجا نیاز هست ما بهش اشاره و اونم این که بعضیا فکر میکنن اسلام وقتی که این دو تا کلمه اسلام و ایمان با هم اومدن دیگه در اسلام چیزی به اسم مسائل قلبی و باطنی و ایمانی نیست یعنی اسلام کاملا یه چیز مجزاست خیر اینطوری نیست درست ایمان یک معنای خاصی پیدا میکنه اسلام یک معنای خاص ولی اسلام خارج از ایمان نیست چرا؟ چون اولین چیزی که صحت اسلام به اون برمیگرده ایمان اعتقاده انتشهد ان لا اله الا اللہ و ان محمد رسول الله چطور انسان گواه میده؟ اگر گواهش ناحق باشه که میشه منافق اسلام تزد پذیرفته نمیشه اسلام صحیح در ازای چیه؟ در ازای علم به این کلمه کلمه شاهدین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبد ورسول الله وقتی که بدونه که چی داره میگه و یقینا اعتقاد داشته باشه گواهش هم به حق باشه نه اینکه گواهش دروغ باشه و به حق باشه چون اگر گواهش ما بود میشد منافق این کلمات محمدوها هم جاهای در کتاباتش اشاره میکنه به کلماتی که شاید از باب تصادف بیاد یعنی کلماتی که اگر به تنهایی بیان معانی همدیگه رو دربر بگیرن مثل کلمه و کلمه رب السلام قرآن در قرآن میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا یود دلالات التزام یود دلالات زمونه اینجا خدا میگه یهود و نصارا علمای خودشون رب قرار دادن چطور رب قرار دادن عید بن حاتم تا میگه به رسول خدا سلام که اونا حلال خدا رو حرام میکردن و شما حلال میگردید حلال خدا رو حرام میکردید شما حرام میگردید تا به میشید در حلال استحلال محرمات نو کفر ناقض مسئله اطاعت از خدا اینجا در تشریع یعنی در حاکمیت اینا اومدن حکم به غیر منذر الله می‌کردن یک نمذر با کفر استحلال خب چرا خداوند گفت که علماشو را خدا قرار رب و پروردگار قرار دادن اونا که ادعای پروردگاری نداشتن اینجا اینجا هست کلاما میکرد اینجا رب اومد از باب تذم از اینکه این کلمه ربوبیت معنای الوهیت را در ضمن خودش داره یعنی لازمه لازمه تشریع خدا بودنه و چون اونها تشریع به بعلمای خودشون میدادن حق تشریع را به علمای خودشون، حتت حلال حرام رو به علمای خودشون میدادن، مثلی که اونها را پروردگار و خالق خودشون قرار دادن، یعنی جای خالق آفر آفر خالق آفرنده جهان را با با اون شخص با اون اشخاص عوض میکرد. اینجا هست که خداوند کلمه رب به کار برد. همینطور فرمودید خداوند ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا خدا ازتون خواسته پیانبران رو ارباب یعنی خدا قرار بدید پروردگار قرار بدید معبود قرار بدید اونها را بپرستید نه این که بگی اونها خداناه بحث بحث اعتقاد خدایی نیست بحث چیه شما اونها از حقوقی که دارن بالاتر اونها رو ببرید به جایی که به درجه خدایی برسن بیاد مثلا متوکل بشید به ملائکه متوکل بشید چی به پیانبران خدا که شما را در شرک اکبر بی که اینها چیه اینها خدا قرار دادنه. با همین در بحث اولیا و پیامبران مشرکی میگوتن ما نعوذهم الا ليقربونا إلا الاله ذلفا. مونها رو نمیپرست بحث عبودیته. مگری که ما رو به خدا نزدیک بکنه. این عبودیت بود که اون معبود را تبدیل به رب میکرد به خدا میگرد حقوق خدایی را به خودش تعلق میداد. از این باب هست که این کلمه الٰه و کلمه رب جای از باب التزام یا جای باب از باب التضمنی که معنای همدیگر را ضمنا در بر یعنی اینجا رب کلمه اله و معبود را زمنن در خودش داره انشالله این مواحظ یعنی در مطول دیگه با شرط داده بشه اینجا فقط خلاصوار همین همینقدر اکتفا میکنیم چون هر چقدر من بیشتر توضیحش بدم شاید پیچیده در بشه پس اینجا یک قسمت قسمت اولش گواه بر خداوند به اینکه که خداوند معبوده و خداوند ربه خداوند خالق قرونه آفریننده هست هرچنکه در این گوا جزء بدیهیات این که خدا خالقه مشرکی هم اقرار داشتن به درذین بقول تنها باید باید اقرارو قبول داشته باشیم که خدا من خالقه اگه قبول باشیم مشرک میشیم میشیم ملحد میشیم زنديق میشیم فرعون لازمه شهادت شهادت ما بر خداوند بر وحدانیتش وحدانیت در آفرینشش وحدانیتش در اسماء صفاتش وحدانیتش در الوهیت و عبودیتش هم خدا را یکتا قرار بدین در اون شناختی که بهش داریم در معرفتمون نسبت به خدا بشي بشي. و هم در تَرَشّش یک تا فرستم بشین متحد بشیم این که خدا رو بشناسیم در واقع درد نمیخوره این که بفهمیم خدا را قبول داریم که یکتاست و قابل قبول نیست اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کذاب بر رسول رسولیت محمد صلی الله پیامبری و سلم, پیانبر سلم. پیغمبریه پیغمبر سفارت این که پیغمبر خداست یعنی پیام آور خداست پیغامی از سوی خدا به من آورده لازمه اقرارمون به این پیغام چیه ترجیح اقوال رسول الله صلی و و رسول الله علیه بر اقوال و خودمون و پدر و مادر و جد آبادمون نیاکانمون هر کسی بودن قال الله و قال رسوله اومد دیگه چیزی به اسم جد آباد دیگه نیست قط قرمز قبول کردی تو گفتی که قبول دارم که این پیام پیغاموور خداست پیغاموور رسول خداونده این لازمه چیه؟ لازمه گواه بر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بقیه ارکان که واضحه پس اولی که اسلام شهادت این توش بود به در بر میگیره. یعنی این اسلام فقط این نیست که فقط شب نماز بخونه روزه بگیره بلکه باید معنای اسلام هم بدونه این اسلام پایبندی به اسلام تعریف اسلام اسلام چیه پایبندی به نماز روزه زکات اگر اینها در تو نباشه تو دیگه مسلمان نیستی به خاطر همین به اتفاق اهل سنت کسی که نماز نخونه اصلا بده من نماز نمیخونم این شخص کافره در مقابل مسلمان ده نمیشه اختلاف علمای اهل سنت در کجاست این که گاهی بخونه نماز گاهی نکنه کسی از عم ترک نماز گفت نمیخونه این کافره این محل اختلاف نیست بین بین اهل سنت کسی که به اصلا من روزه نمیگیرم به خاطر همین ابوقره صدیق و ها جنگید. قال وفیه عنه هره رضی الله عنه جنگید چنین گفت قال وفي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم و من, سلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان کسی که مسلمان ها از زبانش و دستش در امان باشه مسلمان کسی که تطبیع امر خدا باشه خدا گفت مال مردم نخور خدا گفت دزدی نکن خدا گفت ظلم نکن این مسلمانه میگه نمی کنه و مسلمانان ازش در امان موندن غیبت نکرد، تهمت نزد به مردم، قذف نکرد، نگفت که فلانی زناکاره، فلانی نمیدونم فلانه، التزام و پایبند شریعت خدا شد. اون چیزی که خدا ازش خواسته بود لا یقطبع بعضا بعضا بگه چش. مسلمانا از دست در امان باشن از زبانش بگه چش. اذیتش رو نمیکنه با غیبت، با تهمت، با دروغ، با بهتان. این مسلمانه اینجا بجه شاههد در کجاست تعریف اسلام، اسلام تنها روزه ونماضز اسلام اعمال جوارح و پای بندی به اسلام از غیبت نکردن و دروغ نگفتن و خیانت نکردن و خلافف بعد انجام ندادن همهها در تعریف اسلام وارد میشه. قالب عن بعضذب ن حكيم أبيه عن جده أن وسلة رص سدم من الإسلام فقال أن تسللم قلبة للله وتلي وجهت إلى الله والتصلي، الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه واحمد تسلم امام تفسير شهادتين كه مناجي تسلم قلبك لله وتولي وجهك الى الله انكه انسان خالصان خدا رو بفريند هل لله الدين خالص من عمل عملا اشرك ماعيه فيه غير تربه وشركه كسي عمل انجام بده كسي ديگرا با من در اون عمل شريك قائل بشه ميخدا ميخودشو شركه سهام ميكنه خدا هيچ شريكي رو در عبادت به خودش نميپذيره و فإنك النموذي مكتوب رو بخوني فالزكاة رو بدي فعن أبي قلبة رضي الله عنه وعن أبي قلبة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسوس أم الإسلام قال أن تسلم قلبك ويسلم, ويسلم المسلمون من لسانك ويدك إسلام إنك قلبت برير خضاء خالصانه يعني قال صنع خضاء ربي فرسي تسليم أمر خضاء بشي ومسلمانا الزبانة تدست دار أمام بشي قال أي الإسلام أفضل خودم اسلام بالاتر بهتره گفت ایمان قال اول ایمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الم ما شک نداریم که اسلام برای خودش مراتب داره یک کسی کمال اصل ایمان رو داره کمال واجب رو داره کمال مستحب رو انجام میده یک شخصی اتفاق میکنه به کمال واجب واجبات انجام میده حرام رو انجام نمیده یک کسی نه در گناهان میفته اینها در یک آیا به اشاره شده ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ايمان داره اورثنا الكتاب كتابشون دادین اهل ایمان اهل اسلام ولكن ظلم خودشون کردن کمال واجب نزد اونها ناقص شده نقصان دو تا نقصان واجب شدن فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد اختصار کردن مقتصد اقتصاري عمل کردن خدا گفت انجام نده ندادن حرام رو انجام ندادن واجبات رو انجام دادن اقتصاده منهم سابق بالخيرات سبقت گرفتن در چی؟ در میکی ها کمال مستحب را انجام دادن این ستا در حدیث جبریل هست قال من اسلام اسلام ظاهر نماز روزش رو گرفته مرتبه بعد از اسلام چیه؟ ایمان کاملتر شد اسلامش کاملتر شد پایبندی و انقیاد و علمش و بصیرتش بیشتر شد با علم اومد خدا را پرسید علم به ملائکه و علم به کتاب های آسمانی و علم به پیانبر خدا بغات اکتفا نکرد حالا من مسلمانم نماز می خونم فقط ببین اکتفا نکرد نه رفت دنبال این که من چرا مسلمانم چرا خدا گفت ملائکه است چرا خدا گفت پیامبره فرستادم چرا خدا گفت که ایمان به قضا و قدر داشته باشی و به روز آخرت چی روز آخرت این برتریه فضیلت بالاتر از چی بالاتر همینجا سوال میشه کدوم اسلام بهتره اسلامی که همراه ایمان باشه یعنی فقط شخص اکتفا نکنه به اسلامش بلکه دنبال ایمان حقیقی باشه بالاتر از ایمان چیه احسان. ان تعبد الله كانك ترى شلون عبادات بگوین خدا رو به پرست می کنید کسی که جلو خود نمیریه نهایت اخلاص نهایت متابعت نهایت پیروی از دستورات خداوند همون ته گفتم انجام دادن کمال واجب با کمال مستحب قال باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل, فلن يقبل منه اینجا اشاره داره یعنی باب رو گذاشته به اسم یک آیه کسی غیر از اسلام دین رو برای خودش انتخاب بکنه اون دینش قابل قبولیست برای خدا نزد خدا نیه قابل قبولیست و من یبتغ غیر الاسلام دینه فضیلت اسلام وجوب اسلام تکرار میکنم تعریف اسلام الان با توجه به این تعریف که از اسلام شد تسلیم عوابار خدا شدن در مسائل تعبدی مسائل ارتقادی فکری منشی سلوکی رفتاری و همه اینها اسلام همه هست روشی از این روش های دینی غیر از دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کردی راه رو رو روشت نزد خداوند یبتق غیر الاسلام این اسلام که تعریف شد دینی برای خداوند دینی انجام دادی برای خدا یا دینی برای خداوند برگذیدی اون دین نزد خداوند قابل قبول ایست فلن نه همونطور که قبلا اشاره شد این عدم قبول و پذیرش یا اینکه که مطلقا یهودی شدی نستدانه شدی ки аслан буи беҳш намекишед аслан буи беҳш намекишед ма йасмаъу би мин яҳудиин ва ла насронийян ва ла ва лам юъмин би илло ва адхалаҳуллоҳ ан-нар хонавишди яҳудии насронийи намешнивад аз ман имон намеёрад магар инки накӯ намешнивад баҳс чандидан баҳс илми бидуни ки ин пиён баро пеروی накунад не баҳс ҷаҳил намекунад ҷаҳир ки каси ки илм беҳш нарасид ки каси ки اعراض نمیکنه ان نرسیده بهش روز قیامت دوباره امتحان میشه چنانچه رسول الله صلوات علیهم فرمودن شخص انکار کرده بحث اینو نمیکنه بحث کسی که میدونه ولی که میگه نه من این اسلاب ما نمیخوام من پیامبر رو قبول ندارم میدونه ولی کلاف و عمل میکنه مثل ابو جهل ادهابی که میدونسن این رسول خداست مثل یهودی که میدونسن یعرفونه و كما يعرفونه, يعرفونه ابناهم هم چرا فرزند خودشون رو میتونیدن میشناختن رسول الله رو میشناختن که پیامبر خداست ولی با این وجود دشمنی و عداوت داشتن این اشخاص هیچ وقت دینشون را خدا ازشون نمی‌پذیره به خاطر همین خدا و حکم کفرشون رو میده لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه کافرس اون گفت خدا سه تاست به خاطر همین از نواقض اسلام چیه اینه که ما یهود و نصارا را مسلمان بدونیم کسی بیا دین اونها را قضیری ما بگیم حق اختیار داریم میتونی مسلمان بشی میتونی یهودی این ناقض اسلامه یعنی یعنی نبوت خط نشده یعنی اینکه دین اونها منسوخ نشده چون ما بگیم دین منسوخ شده دین اسلام ما نسخش کرد دیگه حق نداره رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لوکن موسى حي لما واساه الا يتبعني زنده بود حق نداره فقط اینکه تابع من بشه حق نداشت موسی علیه السلام که زنده بود پیامبر خداست ولی اگر زنده بود با تابع من بشه همونطور که قصه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام سوالی کرد برترین مؤمنانی که به رسول الله صلی ایمان آوردن کی بوده ابوبکر خیر عیسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه عیسی باشی میมา رو برد و عیسی هم میاد پوشت سر مهدی علیه السلام مهدی که هادی هست که معتقاد بهش داریم که شخصی در یک شبانه روز به دنیا نمیاد در دنیا میاد و میادو. بعد اروپا رو فتح میکنه عیسی علیه السلام که خدا بالاش برده در دمشق اون میاد ایسا با پوشت سر مهدی نماز میکنه و به عنوان یک شخصی تابع رسول الله صلی الله علیه و تابع از منات رسول الله صلی الله علیه و سلام پشت سر اون محمد ابن عبد الله نماز می‌خونه اسمش محمده و پدرش عبد الله پوشه شها شخ نماز می‌خونه به عنوان یک فعلی سالی که خیلی از مطرح می‌کنن یعنی بین ابراهیم و عیسی محل اختلاف نیست این پیامبر خداست ما هیچ کسی رو از پیامبران خدا یعنی غیر از خدا بر پیامبران هیچ وقت کسی رو برتر نمی‌دونیم شکی در برتر بودن پیامبران نیست بس کسی اومد اوماد دیگه من حق اختیار رو دارم که هر دین رو انتخاب بکنم میگیم تو اسلام تو نقض کردی تو اسلام را قبول نکردی این یک قسمت قسمت دوم کسی در امری از امور تشریعی در عبادتی از عبادتها بدعتی میاره یا بدعت فکری هندیشهی طابع عبدالکریم سروش میشه عبدالکریم سروش طابعی کیه؟ ارستو واضح هدیه فیلسوفه طابع منش میشه یا طابع یکی از فرقای تطبخ میشه میشه گیلانی میشه قادری میشه یک طریقت برای قص انتقام میکنه لباس خاصی فرم خاصی میپوشه و یک طریقت خاصی برای خودش میگیره یک طریقت خاصی حکم این شخص چیه پیش خداوند خارجی یه فکر خارجی رو به خودش میگیره مسلمان ها رو تکفیر میکنه مرجعی میشه میگه عمل ایمان نیست حیف که گناه بکنی پیش خداوند ایمان ما مثل ایمان فرشتگانه آیا این اسلامه نه خیر این اسلام حقیقی که خدا از تو بپذیره نیست اسلام حقیقی کدوم اسلامه ислами ки ходованд ба расул (саллаллоҳу алайҳи ва саллям) илзом кард ва аз он эълон ризоят кард ин ад-дини ад-дин аллоҳ муқаблан баҳс кардем ва ман яфтар гейрал ислам динан фалайя кула ман алёма акмату алайку ниъмати ва атмамту алайку алёма акмату лакум динанку ва атмамту алайку ниъмати ва радиту лакум ал-ислам алайса ма арафас ислами ки ходованд эълон این مسلط این طریقت این روش این منش که خلاف هدی رسول الله صلی الله علیه و آله استو قبول نمیشه کجا از تو قبول میشه اون که اخلاص و متابعت باشه اون که اسلام حقیقی توشه باب که الان داشتیم باب فرموده خداوند من یتقی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه ما گفتیم بیا اینکه دینی را شخص انتخاب بکنه غیر دین اسلام که کاملا نزد کاملا نزد خداوند قابل قبول نیست و خالد مخلد در کسی دین را Kudesh دین بکنه الزام بکنه که دین خدا نبوده دین انتخاب شده خدا نبوده که بر رسولش شرع بکنه این شخص به اندازه گناهش عذاب میبینه علما مثل امام بن در کتاب جامع ابن حکام را میره در تحریم بدعت و اینکه بدعت شخص محاسبه میشه و خدا ازش نمیپذیره از جمله فرموده خدا ما عملهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأن به الله ناقل میونن به این آیه در تکفیر حاکم برخلاف علمایی که مثل تبعی و ابن غیر تفاسیر نوشتن که رو به این آیات استدلال میکنن در تکفیر حکام که اشتباس این استنباط در تفسیر اشتباس چرا اشتباس گفتم اولا اینکه علما مثل رجاء تا دور حکام میاره این آیه را در بحث تحریم بدعت و اینکه بدعت نزد خداوند قابل قبول نیست اول بحث ها هم میاد الان بعدن بواب دیدیم که در بحث عقوبت بدعت گذار است که به گذار نزد خداوند توبیخ میشه این آیه فرموده خداوند عمله مشارکا شرعوا له من الدین در اون چیزی که شخص تشریع بکنه نی بدعت را تحسین بکنه از باب دین یعنی به عنوان یک دین عمل بهش بکنه این که اجر و داره مسل خونی مثلا به عنوان یک دین بهش نگاه بکنی که این دین ثواب داره عذاب داره به عنوان یک دین عمل کردن بهش املههم شرکا شریکی دارن خدایی دارن که بونا تشریع کرده این اصلاً چی میفهمید که حق تشریع مال خداست خداست که اسلام رو برای ما انتخاب میکنه اسلام چی هست چی بکنیم چی نکنیم خدا بگه میگه هم شرکا غیر از خدا خدای دیگیری دارن مگه که برای اونها تشریع بکنن که بهدار این حلال این حرامه شرع لهم من الدين از دین بحث غیر دینی نیست بس یه چیزی که دین غایی مثلا به فرض یک کسی یه کاری انجام میده ولی نمیگه از دینه نمیگه از دینه موشو یه اصلاح میکنه نمیدونم لباس یه طوری نمیگه از دینه این شخص مؤاخذه میشه خیر یک شخص حال یه کاری رو انجام داد گفت لباس سر پوشیدن سنت بده نسبت داد حکمشیه نواریه بذات احداثه داره مؤاخذه میشه بل میشه کجاست دلیلش کجا خدا گفته پیغمبر خدا گفته که لباس سبس پوشیدن سنته ام لهم شراکاش شراع و لهم ندین مالم یعظم به الله چیزی که خدا رز نداده اجازه نداده تشریع نکرده الان این آیه محل شاهدش کجاست محل شاهدش و محل استدلالش در اینه که دین اسلام دینی هست که خدا تشکیح میکنه و اون چیزی که غیر خدا کسانی که غیر از خدا میان به عنوان دین تشکیح میکنه اون دینشون باطله دین حق داریم و دین ناحق داریم این دینه ها به ناحق هست حال این دین ناحق اگر انجام داد به دعتی که رسول ها حدیه رسول ها روش رسول روش نبود آیا کفرش اکبر یا ازگره؟ خالد مخلط در جهنمه یا نه میگه از دینا مثلا میگه مثلا لباس سبسوشده یا مثلا مولود کنه یا جشن معراد جشن فلان به عنوان دین میگه سواب داره به اسم دین بهش نگاه, نگاه میکنه به دین بچسبنیم نسبت بدیم دلیل از خرام بیانیم و به دین نسبت بدیم بگیم این کار سنته این حکم شیه حکم شرامه بدعته حداسه در دینه یا کفر ادبره અખલ કફર અકબર નિસબત અતે બતતકાએ મે બહીનાયે મસના કરે અબલા હમ શરકા શરા ઉલહુ મિન અદીન મા લા યદમ બિલ્લા હર કસી ઇબાદત اشاره به اینه در این آیه که ما یک غیر اسلامی دین اینکه یا اصلا قابل قبول نمیشه یا اینکه یعنی اصلا کل اعمالش به من تو راه هست اون کافر و اون مشریکه که بچرشه یا اینکه اون عملی که الان به درگاه خدا انجام میده به درگاه خدا انجام میده اون عملش فقط مردود میشه و در روز قیامت مؤاخذه همسر كسييد والمسييد گفتم ك نماز خون بعد از نماز تکرار تکرار تکرار بعد بخدا مؤاخذه ميكنه به خاطر نماز گفتم بله مؤاخذهت مي ميكنم چون در اين وقت داري نماز ميكنين نه به خاطر نماز به خاطر اين وقت به خاطر بدعت بنو ولي در قال وعن اب هريره رضي الله عنه تجيء الاعمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء تقول يا رب انا يقول انك على خير ثم تجيء الصدقه فتقول يا رب انا, يا رب أنا انك على خير اخر حديث حديث زي ده در مصلی ما محمد و زید می روز قیامت نماز میان نماز میگه که دفاع میکنه از شخص من نماز یعنی نماز اون شخص در روز قیامت ما اون چیزی که در اصول شریعت داریم که وزن میشه ترازو میشه سه تا چیز اومده یکی خود شخص که رسول الله صلی الله علیه و آله میگن نبعل العظیم سمید خسین کلکنده و چاق میارن در کفه ترازو بال پشاب وز نداره جای خود شخص اومده جای پرونده اعمال اومده وزن میشه و جای اعمال بعضی میشه چطور اعمال بازدید میشه الله اعلم مثلا شخصی که در قاب قاضی میشه میخوردنش بعد از اینکه خاک ریخته بر سرش مکرنکیر میومد بعد سوالی که میگرسه منکرنکیر بعد از اون اعمالش میشه که یک شخص زیبایی میاد طرفش میگه تو کی هستی که با این چهره ای که میان با عمل صالحت و اون شخص که بعد رفتار بوده اعمالش با چهره ایش میاد به طرفش اعمال خدا مجسمشون میکنه و خداوند قادر برای این کار اینجوری خدا قابلیت این رو بهش داده که چی بیاد رفا بکنه از اون شخص این نشانه اینه که که انسان اعمالش سپرشه در روز قیامت اعمالش که خالصانه انجام میده برای خدا بر مدافعشه ولا دارن نسبت بهش به خاطر همین اون شخصی که خیلی گناه در روز قیامت که جهنم خدا برش نوشته بود کرفهی گناهانش برطری یافته بود خدای گفت گفت نذوقی عمل نیکی داره نگاه کردن که چی داره یک کارت یک بطاقه‌ای روش نوشته لا اله الا الله یک حسن ندوشونم لا اله الا الله گذشتند در که حسنا کل اون بدیهاش بر رفت کل و کل بدی‌هاش به باد رفت چه چیز سنگینی که در اعمالش یک کلممونم کلمه, کلمه توحید لا اله الا الله چرا چون خالصانه برای خدا گفت چون خالصانه برای خدا در. انسان ایک عملی خالصانه انجام میده یک عبادت را خالصانه برای خدا در. انجام میده به اون بیش خدا با مقبول میده با اون عمل بهشتی میشه پس اینجا نمازه میاد دفاع میکنه بعد روزه است دفاع میکنه بعد دیگر اعمالش بعد میاد اسلام تو مییجی اسلام و میگه رب انت السلام و انا الاسلام تو سلامی هر چیز سالمه به دست توست و من اسلامم و میگه انک علی خیر بک اليوم اخذ و بک یعنی بو تو میگیرم و میده بعد این آیه رو رسالت تلاوت میکنم اما اگر غیر از اسلام دین من الغاصب علمد اشرح این گفته و بکل یوم آخو دو و بکل اعطی با تو میدهم و میگیرم گفته شده عقاب توبیخه یعنی من با توجه بود اسلامی که بر تو شعر کردم من رقوبتت میکنم و پاداش بهت میدم به اندازه پای بندیت و گفته شده و بکل و بکل اعطی یعنی با شفاعت تو با, اسلام با اسلامی که من تشبیع کردم حکم میکنم بر دیگر اعمالت حالا این دو تا شرخی که در تفسیره و بتعاخذه و بتعطی و مدد قالوا فی الصحيح العائشه رضی الله عنها ان الرسول صلی الله علیه و آله قال من عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد هکچی عملی انجم بده که امر مبرش نیست اون عمل مردوده که مقبلا این قضیه رو توزیح دادیم شارح اشتدادی حالا ابواب بعد از نمازی فقط اینجا چیزی که مهمه در این ابوابی بحث اسلام اون اسلامی که خدا بر ما واجبه کرده و تعریفی از اسلام که ما داشتیم و بحث همین که غیر از اون اسلامی که خدا بر ما واجب کرده اسلام دیگر رضوانه جزیره اون چیزی که در این نصوص هست هشدار رسول الله صلی الله علیه بشیر و بشیره و نذیر این قسمتی بشارت اسلام اسلامی که ما انجام میدیم بشارت که اگر ما اسلام و اون اونطوری که رسول الله بود انجام دادیم با رسول الله و این قسمتی انذار هشدار اگر اسلام منکر اسلام من درست نگرفتین مستحق عقوبت خدای در معرض خطری است شاید خداوند ما را به خاطر آن علنن بعد شاید خداوند ما را عذاب بدهد و توبه کنیم صلی الله علی محمد و آله و صحبه